دوستان به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین جایی که با همدیگر کلام قدوس خدا رو مطالعه می‌کنیم ضمن مطالعه ما از خودمون سه سوال می‌پرسیم اون چی میگه معنی اون چیه و بیش از همه این برای من چه مفهومی داره دانش بدون کاربرد به هیچ دردی نمیخوره خدا می‌خواد که ما کلام او رو در زندگی همون به کار بگیریم در درس امروز ما از یکی از مردان بزرگ خدا جد اون یاد خواهیم گرفت درس های عملی زیادی هستند که ما میتونیم یاد بگیریم و در زندگیمون به کار ببریم لطفاً به درس امروز با دقت گوش کنین در ادامه بررسی عهد قدیم، برای سومین بار و آخرین بار به کتاب داوران میرسیم ما در کتاب داوران اولاً کاربرد حقیقی شخصی رو دیدیم و بعد کاربرد حقیقی قومی و بعد به کاربرد زندگی افراد نگاهی انداختیم. بیشترین چیزی که خدا در کلامش به ما گفته از طریق زندگی افراد با ما در میون گذاشته. ما وقتی درباره داوران میخونیم میتونیم این حقیقت رو در کتاب داوران به وضوح ببینیم. تنها درسی که اونها به ما میدن اینه که اونها افراد کوچکی هستند، و خدا میتونه افراد کوچک رو به کار بگیره و خدا لذت میبره که کارهای خارقلاده رو از طریق افراد بسیار عادی انجام بده در صورتی که این افراد در دسترس باشند و کاملا تسلیم روح خدا باشند روح این داوران رو کاملا تحت کنترل داره این چیزی که ما در مورد اونها می خونیم. به استثنای این واقعیت اونها همه افراد معمولی هستند اونها تقریبا هیچ مهارت خاصی نداشتن. در این جلسه میخوام که زندگی جد رو با همدیگه بررسی کنیم ما زندگی جد رو در کتاب داوران در باب های 6 و, 7 و 8 خواهیم خوند به اعتقاد من جد اون شاخصترین چهره در بین داوران هست ما میتونیم کاربرد واقعی بیشتری از زندگی جدعون نسبت به بقیه داوران یاد بگیریم جد خودش رو به عنوان ضعیف افراد توصیف میکنه او رو میبینیم بینیم که در یکی از دوره ارتداد در صحنه ظاهر میشه مردم زمانی خدا را خدمت میکردن بعد از اینکه دبوره و یایل قوم را از دست کنعانیان نجات دادند قوم خدا خدا رو در اولویت قرار دادند و او را خدمت کردند اما بعد از مرگ دبوره اونها دوباره در نظر خداوند شرارت ورزیدند و از خدا برگشتند این بار خدا مدیانی ها را برانگیخت و اونها بر قوم غلبه کردند و بر اسرائیل ظلم کردند این بار ظلم اونها بسیار بسیار جدی بود نه تنها جنگ بود که کشتار فجی در اون به عمل اومد، بلکه بعد از جنگ، مدیانی ها در سرتاسر سر زمین اسرائیل هرچه محصول بود نابود کردند و قارت کردند و در سراسر کشور چیزی برای خوردن باقی نماند. بنابراین قوم اسرائیل به فقر فاحشی مبتلا شدند. بعد از هفت سال تحمل ظلم مدیانی ها، قوم اسرائیل باز هم در مقابل خداوند نالب و فریاد کردند و از خداوند کمک طلبیدند در این مرحله خدا مردی رو فراخوند خوند که ناجی اونها بشه، آزاد کننده اونها بشه. اون مرد جدعون بود. در کتاب داوران بابشش می خونیم که فرشته خداوند آمده زیر درخت بلوتی که در افره هست که مال یواش بود نشست و پسرش جدعون گندم رو در چرخشت می تا آن را از مدیان پنهان کند. پس فرشته خداوند بر او ظاهر شده را گفت ای مرد زورآور. یهوه با توست یعنی ای مرد جنگاور خدا با تو هست جد وی را گفت آهی خداوند من اگر یهوه با ماست پس چرا این همه بر ما واقع شده است و کجاست جمعی اعمال عجیب او که پدران ما برای ما ذکر کرده و گفتن اگر ما پاسخ جد به فرشته خداوند را تفسیر کنیم فرشته میگه ای مرد زوراور و جد میگه اگر تو با ما هستی پس چرا این همه بر ما واقع شده و تمامی اون معجزاتی که پدران ما به ما گفته اند کجا رفته؟ باز هم چشمندازهای تاریخی رو به یاد میاره. سالها از عبور از دریای سرخ و بعضی از اون معجزات بزرگ که جد اون درباره شنیده گذشته. پس جد اون هم سؤالی رو میپرسه که بسیاری از مردم امروزه میپرسن. پس اون همه معجزات کجا رفتن؟ ما اغلب در مورد معجزات در گذشته میشنویم. معجزه‌ای در زمان حال به من نشون بده. این چیزی بود که جدعون داشت می گفت اگر بخواهیم پاسخ خداوند به جدعون رو تفسیر کنیم اینطور طور می گیم جدعون برو و به آینه نگاه کن تو معجزه من هستی من از تو معجزه خواهم آفرید حقیقتا این چیزی که اینجا جریان داره چیزی که میتونیم بهش خاندگی جدعون بگیم خدا به جدعون پاسخ داد به این قوت خود برو و اسرائیل را از دست مدیان رهایی ده آیا من تو را نفرستادم؟ این خیلی مهمه که وقتی خدا شما را برای انجام کاری دعوت میکنه با این اعتقاد برای انجام اون کار برید که خدا شما را دعوت کرده و او با شماست. اگر باور کنید که خدا شما را فرستاده و باور کنید که خدا با شماست، اون وقت باور میکنید که مهم نیست که شما کی هستی. مهم اینه که خدا کی هست. مهم این نیست که شما چیکار میتونید بکنید. مهم اینه که خدا چیکار میتونه بکنه. این چیزی نیست که شما میخواید چیزی که خدا میخواد. وقتی که معجزات از طریق شما و در شما اتفاق میافته، به گذشته نگاه کنید و بگید این من نبودم که این کار را انجام دادم این کاریه که خدا کرده چون خدا منو فرستاده و خدا با من بوده من خادمینی رو در چهار گوشه این دنیا ملاقات کردم و اونها رو در جاهایی دیدم که نزدیک 25 سال اونجا بودن من حتی از اینکه سه ساعت در اونجا بودم احساس ناراحتی میکردم. و به این نتیجه رسیدم که اگر اون خادمین اعتقاد نداشتند که خدا اونها رو فرستاده و خدا با اونها هست، اونها هرگز در اون محلها نمی‌موندند و تحت اون شرایط 25 سال زندگی نمی‌کردند. این چیزی بود که خدا وقتی جد اون رو فراخوند، داشت به او میگفت: آیا من تو را نفرستادم؟ وقتی خدا جد اون رو فراخوند و گفت که او رو برای نجات قوم اسرائیل از دست مدیان خواهد فرستاد، جدعون اینطور گفت: آه ای خداوند چگونه اسرائیل را رهایی دهم؟ اینک خاندان من در منسی زلیلتر از همه است و من در خانه پدرم کوچکترین هستم. چرا منو دعوت می‌کنی؟ این روند در سرتاسر کتاب داوران به چشم میخوره خدا دنبال مقدسین برجسته نمیگرده. این یه چیز آشکاریه. هو اکثر اوقات دنبال کوچکترین و ضعیفترین افراد میگرده برای اینکه ضعیفترین افراد به احتمال زیاد این رازهای روحانی رو که موسا و دیگر رهبران یاد گرفتن، بهتر یاد میگیرن. رازهای روحانی مثل این من نیستم، بلکه خدا هست. من نمیتونم، اما خدا میتونه. من نمیخوام، اما خدا میخواد. من انجام ندادم، بلکه خدا انجام داد. مردم اگر خیلی قدرتمند باشند چطور میتونند این رازها رو یاد بگیرن؟ اگر اونها خیلی قدرتمند باشند به احتمال زیاد به قدرت العاده خود که خواهند کرد. اما اگر حقیر ترین و زعیف ترین باشند اون وقت خدا میتونه اونها رو وادار کنه که به او اعتماد کنند نه به خودشون به نظر میرسه که او از اون رهبرانی بوده که خدا بارها و بارها در کتاب داوران از اونها دعوت میکنه وقتی خدا جد اون رو دعوت کرد که مدیان رو سرنگون کنه صدها هزار نفر از مدیان در اونجا حضور داشتند اونها مثل دسته بزرگی از ملخها بودند مانند شنهای ساحل در تمام دنیا خدا باید در جدعون ایمان خلق می کرد جانبه که می بینیم خدا دو کار انجام میده که ایمان جدعون رو تقویت میکنه ما در مورد دعوت جدعون جزئیات بیشتری نسبت به بقیه داوران می بینیم به اعتقاد من همه اون داوران تجربیات مشابهی رو پشت سر اند اما وقتی به جدعون می رسیم به نظر میرسه که جزئیات بیشتری رو در مورد او می بینیم خدا وقتی میخواد به کسی عهای ایمان بده دو کار انجام میده اولا خدا میخواد که ایمان این مرد با آزمایش ثابت بشه، بعد خدا میخواد که خودش رو به این مرد ثابت کنه، یا میخواد که ایمان این مرد رو تایید کنه. توجه کنید وقتی خدا که سعی داره مردم رو برای انجام کاری که نیاز به ایمان بزرگی داره دعوت کنه چطور ایمان اونها رو تأیید میکنه. در مزمور 67 بیستو سه میگه اگر خداوند راه کسی را خوش بدارد، گامهایش را استوار میسازد. زمانهایی بوده که شما هیچ نشانه ای از این که اراده خدا چی هست نداشتید. به دوراهی بر سر جاده رسیدید و نمیدونستید که آیا به راست برید یا به چپ. تمام تلاشتون رو کردید تا بدونید و بعد به راست یا به چپ رفتید. بعد برای تایید دعا کردید چون که گام‌های مؤمن توسط خداوند دشوار میشه، خداوند ایمان ما رو تایید و ثابت میکنه تا اینکه ما رو تشویق کنه و ایمان ما رو قوی‌تر بکنه. خداوند گامهای جدعون رو به طرق مختلف استوار کرد اولا او به طور خارغالعادهای هدیه تقدیم کرد جدعون این هدیه رو بر حسب تعالیم خداوند آماده میکنه اون با آتش موجزاسایی که از آسمان میاد پذیرفته میشه این واقعی موجزاسا بود که یقینا ایمان جدعون رو تأیید استوار و تشویق میکنه بعد جدعون به خدا میگه اگر اسرائیل را بر حسب سخن خود به دست من نجات خواهی داد اینک من در خرمنگاه پوست پشمینی میگذارم و اگر شبنم فقط بر پوست باشد و بر تمامی زمین خشکی بود خواهم دانست که اسرائیل را بر حسب قول خود به دست من نجات خواهی داد و همچنین شد و بامدادان با به زودی برخاسته پوست را فشرد و کاسه ای پر از آب شبنم از پوست بیفشورد و جد جدعون به خدا گفت غضب تو بر من افروخته نشود و همین یک مرتبه خواهم گفت یک دفعه دیگر فقط با پوست تجربه نمایم این مرتبه پوست به تنهایی خشک باشد و بر تمامی زمین شبنم و خدا در آن شب چنان کرد که بر پوست فقط خشکی بود و بر تمامی زمین شبنم خدا مردی را دعوت میکنه که ناجی قوم از دست مدیان باشه اگر شما با خدا مواجه می شدید و احساس می کردید که خدا شما را دعوت میکنه که کاری مثل این بکنید و خدا با شما صحبت میکرد آیا شما هم کمی تایید نمیخواستید در مورد پوست و شبنم می‌بینیم که جدعون این کار رو کرده. حالا مفهوم کلی این چی بوده؟ به اعتقاد من این کاری برای تثبیت ایمان جدعون بوده. خدا از او دعوت کرده که کاری بزرگ انجام بده. خدا میخواد که گام‌های جدعون رو تایید کنه و استوار کنه. پس درخواست‌های جدعون رو به جا میاره. بین گذاشتن پوست بیرون و امتحان کردن خداوند یک مرز مبهم هست. وقتی خداوند عیسی در بیابان وسوسه شد یکی از وسوسه هایی که شد این بود که بر بالای معبد بره و خودش رو پایین بیندازه. شیطان به او میگه که قبل از اینکه او به زمین بیفته فرشتگان او رو نجات خواهند داد و این به همه ثابت میکنه که او پسر خداست. پاسخ عیسی به شیطان وسوسه‌گر این بود: نوشته شده است خداوند خدای خود را می ببینید وقتی ما نزد خدا میاییم باید با ایمان به حضور او بیاییم. بدون ایمان نمیتونید خدا رو خشنود کنید. بدون ایمان نمیتونید به حضور خدا بیایید این روشیه که باید به حضور خدا بیایید همون طبیعت ایمان خودش میگه که زمانهایی خواهد بود که خدا ما را آزمایش خواهد کرد به هر حال ما حق نداریم خدا را آزمایش کنیم اگر من پسری داشتم که آماده بود که در دانشگاه ثبت نام کنه فرض کنید بعد از اینکه مسئولین دانشگاه موافقت کردند که پسر من رو بپذیرند من با اونها صحبت میکردم و میگفتم حالا یه چیز در مورد پسرم هست امتحان دادن او رو خیلی عصبی می کنه بنابراین نمیخوام که هیچ امتحانی از او بگیرید. او دوست نداره که امتحان بشه او میخواد در تاریخ فارغ و تحصیل بشه. حالا نمیدونم آیا جدولی دارید که ما بتونیم استادان تاریخ شما رو ببینیم تا پسر من اونها رو امتحان کنه و ببینه که اونها تاریخ رو بلد هستن یا نه تا استاد مورد نظرش رو انتخاب کنه. فکر می اینطوری او هرگز میتونه وارد اون دانشگاه بشه، به گفته کتاب مقدس وقتی که شما سفر ایمان خودتون را آغاز می کنید مثل این هست که شما در دانشگاه ایمان خدا پذیرفته میشید شما حق ندارید خدا را امتحان کنید خدا حق داره شما را رو هر روز امتحان کنه خدا میتونه به شما تکالیف روزانه بده آزمایشات روزانه و آزمایشات نهایی خدا میتونه هر وقت که بخواد شما را امتحان کنه این امتیاز او هست اما شما حق امتحان کردن خدا رو ندارید. شما باید گذاشتن پوست به بیرون و امتحان کردن خدا رو متعادل کنید خدا تا یک حدی پوست رو تحمل میکنه او تا جایی ایمان شما رو تایید استوار میکنه خدا میدونه که شما در قلبتون واقعا ایمان دارید و نیاز به تأیید دارید ظاهرا خدا اون رو میپذیره این در واقع امتحان کردن خدا و شک کردن به او نیست خدا ایمان جد اون رو به روش سوم هم تایید کرد به نظر میرسه که این تایید نهایی بود درست قبل از اینکه اونها به مدیان حمله کنند که در وادی اردو زده بودند جایی که خیلی تاریک بود و در همان شب خداوند وی را گفت برخیست و به اردو فرود بیا زیرا که آن را به دست تو تسلیم نموده و چون چیزی را که ایشان بگویند بشنوی بعد از آن دست تو قوی خواهد شد یعنی ایمانت یک بار دیگر تایید خواهد شد پس چون جت اون رسید دید که مردی به رفیقش خوابی بیان کرده میگفت اینک خوابی دیدم و هان گرده اینان جوین در میان اردوی مدیان غلطانیده شد به خیمه ای برخورد و آن را چنان زد که افتاد و آن را واژگون ساخت چنان که خیمه بر زمین پهن شد نمیدانم تعبیر این خواب چیست رفیقش در جواب وی گفت این نیست جز شمشیر جدعون ابن یوآش مرد اسرائیلی زیرا خدا مدیان و تمامی اردو را به دست او تسلیم کرده است. وقتی جدعون نقل خواب و تعبیرش را شنید سجده نمود و خداوند را پرستش کرده و گفت خداوندا متشکرم که ایمان مرا تایید کردی و بعد به لشکرگاه اسرائیل برگشته و گفت برخیزید زیرا که خداوند اردوی مدیان را به دست شما تسلیم کرده است. خدا حالا ایمان جدعون را واقعا تایید کرد. جدعون دیگر نیازی به تعیید تسبیت و تشویق یا پوست بیشتری نداشت او حالا مطمئن بود که خدا او را بر مدیانی ها پیروز خواهد کرد بعد ما میبینیم که خدا با مردی که ایمانش برای خدا و خودش ثابت شده است میتونه چیکار کنه مرد ایمانی که خدا برای کار معجزاسای خدا آماده کرد اما اول میخوام شما را به چالش وادارم. دارم آیا خدا شما رو برای کاری ایمانی که میخواد در شما و توسط شما انجام بده تجهیز میکنه آیا این امکان هست که خدا بخواد توسط شما کاری انجام بده اما شما اونقدر به اون نزدیک نباشید که بفهمید اون چیه خودتون رو با زندگی جدعون و تجربیات او در کتاب مقدس مقایسه کنید ما میبینیم که خدا نه تنها خودش رو بر جدعون ثابت میکنه بلکه جد جدعون رو قبل از اینکه به کار بگیره تا بر مدیانیان غلبه کنه به خودش هم ثابت میکنه. یعنی به او اعتماد به نفس میده ضمن بررسی کتاب مقدس به باب شش کتاب داوران رسیدیم جایی که زندگی مردی به نام جدعون رو مطالعه می کنیم ما دیدیم که قبل از اینکه خدا جدعون رو برای قلب بر مدیان استفاده کنه قومی که در دوره جدعون بر بنی اسرائیل چیره شده بودن براهای عجیبی خودش رو بر جدعون ثابت می در داستان جدعون می بینیم که خدا همین طور می خواد جدعون رو به خودش هم ثابت کنه میتونید به این چالش ایمان جدعون بگید. مثلا یکی از اولین چیزهایی که خدا به جدعون گفت انجام بده که ایمانش رو ثابت کنه این بود. پدر جدعون یکی از افراد مرتد بود. او مذبهی داشت که برای بل یکی از خدایان مشرکین ساخته بود. خدا به جدعون گفت گاو پدر خود یعنی گاو دومین را که هفت ساله است بگیر و مذبح بل را که از آن پدرت هست منهدم کن و تمثال عشیره را که نزد آن است قطع نما و برای یهوه خدای خود بر سر این قله مذبهی موافق رسم بنا کن و گاو دومین را گرفته با چوب عشیره که قطع کردی برای قربانی سوختنی بگذران به زبان امروزی میتونیم بگیم خدا به او گفت برو و گرانترین ترکتور پدرت رو بردار و با اون مذبه بوتهای پدرت رو خراب کن حالا این یک چالش بود؟ به نظر من این یک چالش بزرگی بود بعضی ها بر این باورند یک تعلیم معتبری هست که میگه همیشه باید هر کاری رو که پدرت میگه انجام بدید. کتاب مقدس میگه فرزندان از والدین خود اطاعت کنید. من باور نمی کنم که کتاب مقدس بگه وقتی که بالغ شدید باز هم هر کاری رو که پدر و مادرتون میگند انجام بدید. باید به با اونها احترام بذارید و اونها رو تکریم کنید. اما الزامن نباید از اونها اطاعت کنید. بارها در ها میگه اگر شما نخواهید که مرا بر پدرتون ترجیح بدید، لایق من نیستی. عیسی ما رو به چالش میکشه که او رو در اولویت زندگیمون قرار بدیم. بیشتر از پدر و مادرمون. اینجا یک مثال عینی از اون رو میبینیم که به جدون گفته شده که بوتهای پدرش رو نابود کنه و از بین ببره. اون چالش بزرگی برای ایمان جدون بود. جدون کاری رو کرد که خدا به او گفت انجام بده. او فرمان خدا رو در اولویت قرار داد و اطاعت کرد. صبح روز بعد چون مردمان شهر برخواستن، اینک مذبح بل منهدم شده و عشیره که نزد آن بود بریده شده بود. اونها گفتند کیست که این کار رو کرده؟ و چون دریافت و تفحص کردن، گفتند جد اون این کار رو کرده. پس اونها می‌خواستند که جد اون رو بکشن چون که مذبه بل و عشیره رو منهدم ساخت. حالا اینجا مطلب جالبی هست. پدرش از او دفاع کرد. پدرش از جد اون دفاع کرد و به اونها گفت آیا شما برای بعل مهاجه میکنید یعنی شما از بل دفاع میکنید آیا شما او را هر که برای او مهاجه نماید همین صبح کشته شود و اگر او خداست برای خود مهاجه نماید چون که کسی مذبح او را منهدم ساخته است پس در آن روز او را یر نامید و گفت بگذارید تا بل با او مهاجه نماید زیرا که مذبح او را منهدم ساخته است بزرگترین تایید برای جد زمانی بود که خدا به او گفت ارتش خود را منظم کن این یکی از بزرگترین داستان های عهد قدیم هست بعد از تمام این تایید ها و اثبات ها جد اون هزار نفر مرد آماده حمله به مدیان فراهم کرد که حدود یکصد هزار نفر مردان جنگی داشتند. وقتی که برای حمله به مدیان محیا شده بودن، خدا گفت، قومی که با تو هستند زیاده از آنند که مدیان را به دست ایشان تسلیم نمایم. مبادا اسرائیل بر من فخر نموده بگویند که دست ما ما را نجات داد. پس الان به گوش قوم خود ندا کرده بگو هر کس که ترسان و هراسان باشد از کوه جلعاد برگشته روانه شود. و بیست هزار نفر از قوم برگشتند و ده هزار باقی ماندند. یادتونه در تسنیه بیست موسا گفت چون برای مقاطله با دشمن خود بیرون روی و عصبها و عرابه و قومی را زیاده از خودبینی از ایشان مترس زیرا یهوه خدایت که تو را از زمین مصر برآورده است با توست. و چون به جنگ نزدیک شوید، آنگاه کاهن پیش آمده، قوم را مخاطب سازد و ایشان را گوید اگر کسی دختری نامزد کرده و به نکاح در نیاورده است، او روانه شده به خانه خود برگردد. مبادا در جنگ بمیرد و دیگری او را به نکاح درآورد. اگر تاکستانی قرض کرده اید و آن را حلال نکرده اید به خانه خود برگردید چون ممکن است بمیرید و کس دیگری آن را حلال کند. ما به شما نیازی نداریم. در حالی که جدون داشت از لشکر سیدو هزار نفری خودسان میدید روح القدس کتاب مقدس را به یاد او میاره. پس جدون بلند میشه و میگه اگر کسی از شما میترسه. میتونه به خونش برگرده و 22 هزار نفر اونجا رو ترک میکنن او داشت از 10 هزار نفر سان میدید که خدا به او گفت باز هم قوم زیاده اند. ایشان را نزد آب بیاور تا ایشان را برای تو بیازمایم و هر که را به تو گویم این با تو برود او همراه تو خواهد رفت و هر که را به تو گویم این با تو نرود او نخواهد رفت و چون قوم را نزد آب آورده بود خداوند جد کرد گفت هر که آب را به زبان خود بنوشد چنان که سگ می نوشد، او را تنها بگذار و هر که بر زانوی خود خم شده بنوشد و عدد آنانی که دست به دهان آورده می نوشیدن نفر بود و جمیع بقیه قوم بر زانوی خود خم شده آب نوشیدن و خداوند به جد گفت به این سیصد نفر که به کف دست نوشیدن شما را نجات میدهم و مدیان را به دست تو تسلیم خواهم نمود از سایر قوم هر کس به جای خود برود. 9700 نفر از قوم کنار گذاشته شدند. خدا گفت به اونها بگو به خانه های خود برگردند به اونها نیازی نداریم. همین 300 نفر کفایت می کند. این در واقع کمتر از یک درصد کل لشکر جدعون بود. اینجا ما کاربرد و تعلیم زیبایی میبینیم. ما این رو در همون ابتدای ظهور خود خداوند میبینیم. خدا به اکثریت بیتفاوت نیازی نداره، او هرگز نیاز نداره. خدا به اقلیت متحد نیاز داره. خدا اکثریت بیتفاوت رو به کار نمیگیره، اقلیت متحد رو به کار میگیره. این درسیه که ما از این داستان میگیریم. وقتی که میبینیم ارتش ۳۲ هزار نفری تصویر میشه و به 300 نفر میرسه. روش دیگری که خدا ایمان جدعون رو ثابت میکنه، توسط نقشه نبردی بود که به وسیله اون بر مدیان غلبه کردن. سعی می کنم که این نقشه نبرد رو به تصویر بکشم. قلب برمیدیان واقعاً اندازه قلب بر کن آنیان توسط دبوره موجزه خارقلاده نبود. موجزه خارقلاده این بود که باعث شد 900 عربه جنگی سیسرا در هم بریزه. به اعتقاد من اون مداخله مستقیم الهی بود. من به موجزات ایمان دارم و معتقدم که وقتی شما کتاب مقدس را مرور می کنید باید تصمیم بگیرید که آیا به کارهای خارقلاده ایمان دارید یا ندارید؟ اما تمامی این موجزات العاده نبودند. من فکر نمی کنم قلبه جدعون بر مدیان العاده ای بوده پیروزی جدعون مستلزم ایمان بزرگ شجاعتی باور نکردنی و نخشه زیبا بود مدیان در وادی اردو زدند که بسیار تاریک است. اونقدر تاریکه که شما دستتون رو در مقابل صورتتون نمی بینید. خدا به جد اون گفت اون سیصد نفر رو به سه فرقه تقسیم کنه و به دست هر یک از اونها کرناها و سبوهای خالی بده و مشعلها در صبوها بذاره و به ایشان بگه که به من نگاه کنید و هر کاری رو من می کنم شما هم بکنید پس چون به کنار اردو رسیدید هر من می کنم شما همچنان بکنید و چون من و آنانی که با من هستند کرناها را بنوازیم شما نیز از همه اطراف اردو کرناها را بنوازید و بگویید شمشیر خداوند و جدعون این درس بزرگی در رهبری هست. جدعون گفت همون کاری رو بکنید که من کنم. این رهبری واقعی هست. تمامی این مردان سرسپرده بودند در دستان چپشون سبو داشتند که مشعل درون آن قرار داشت و در دست راستشون کرنا بود وقتی که جدعون علامت داد اونها سبوها را شکستند و سیصد مشعل بیرون آمد و بعد کرنا ها را نواختند سیصد کرنا با هم بعد فریاد زدن شمشیر خداوند و شمشیر جدعون. این وقایه در سه جهت مختلف اتفاق میافتاد. اگر شما به جای مدیان بودید که در تاریکی مطلق روی زمین خوابیده بودید وقتی که بیدار می شدید و می شنیدید که سیصد کوزه با هم می شکنه و بعد سیصد مشعل رو میدیدید و می شنیدید که کرنا با هم مینوازه و 300 نفر همزمان از شمال، قاد و شرق اردوی شما فریاد میزنن چی فکر میکردید؟ احتمالاً فکر میکردید که لشکر بزرگ جتعون شما رو محاصره کرده حالا ما میدونیم که اونها فقط 300 نفر مرد سرسپرده بودند این کاربرد وعده‌ایه که موسا در لاویان داده که چند نفر از شما بر هزاران نفر از اونها غلبه خواهد کرد اون وعده عملاً اینجا تحقق یافت مدیان فکر کردم که محاصره شده‌اند یادتونه که گفتیم تاریکی مطلق بود اونها قطعا وحشت کرده بودند و در تاریکی شروع به کشتن همدیگر کردند مردان جت اونها را از وادی راندند اونها همدیگر رو مثل گله لگدمال کردند بعد مردان اسرائیل از نفتالی و اشید و تمامی منسی جمع شده مدیان رو تعاقب نمودند وقتی نبرد به پیروزی میرسه زیاد سخت نیست که همه مردم به جنگ ملحق بشن اونهایی که رفته بودند خونه برگشتند و به همراه اونها مدیان را به طرز فجیعی به قتل رسوندند. مدیان و همپیمانان اونها رو به کلی شکست دادن قلبه بر مدیان در یکی از زیباترین آیات در عهد قدیم شرح داده شده این آیه میگه و هر کس به جای خود به اطراف اردو ایستادند و تمامی لشکر فرار کردن و ایشان نعره زده آنها را منهزم ساختن این آیه بسیار زیباییه هر کسی در جای خودش ببینید دلیلی که باید جدون اون اکثریت بیتفاوت را غربال میکرد تا اقلیت متعهد رو به دست بیاره این بود که او نیاز به مشارکت صد درصد داشت فرض کنید که هفتاد درصد اون مردان می ترسیدن و کرناها رو نمی نواغدن یا مشعلهاشون رو روشن نمی کردند و یا فریاد نمی زدن فرض کنید فقط سی درصد کرناها رو می نواغدن و فریاد می زدند و مشعلهاشون رو روشن می کردند. اونها می نابود بشن برای اینکه این نقشه این کار بکنه باید صد درصد تعهد تمامی مشارکت کنندگان به کار گرفته میشد. این تصویر زیبایی از کلیسای امروز عیسی مسیح است خدا امروز به اکثریت بیتفاوت نیاز نداره او به اقلیت متحد در بدن مسیح نیاز داره که هر کسی در جای خودش بیسته اگر خدا بتونه هر کدوم از ما را وادار کنه که در جای خودمون بیستیم و هر عطیه روحانی که او به ما داده به کار بگیریم در هر موقعیتی که اون عطایا ما رو قرار میده با صد درصد تعهد و وفاداری به عیسی مسیح اون موقع ما خواهیم توانست بر تمامی سپاه جهنم غلبه کنیم به اعتقاد من کاربرد این نبرد زیبا که جدعون بر مدیان غلبه کرد احتمالا تایید نهایی ایمان جدعون بود ضمن مطالعه شخصیت و ایمان جدعون میبینید که خدا چطور ایمان جدعون رو با حمایت او تایید و تثبیت میکنه میبینید که خدا چطور خودش رو با به چالش کشیدن و او ثابت میکنه. آخرین چالش نقشه نبردی بود که منجر به پیروزی شد داوران دیگری هم در کتاب داوران هستند که یفتاه یکی از اونهاست او فرزند نامشروعی بود که برادرانش از او نفرت داشتند و بعد وقتی امونیان بر اونها غلبه کردند اونها به لشکر یفتاه نیاز پیدا کردند و مجبور شدند که از او بخواند که ناجی اونها بشه یفتا تو کار انجام میده که ما میتونیم کاربرد واقعی از اونها به دست بیاریم. یکی از اونها نظر یفتاح بود. قبل از پیروزی بر امونیان او برای خداوند نظر کرد که بعد از پیروزی هر چه به استقبال او از در خانهش بیرون بیاد از آن خداوند خواهد بود. اولین چیزی که یفتاح میبینه از در خانهش خارج میشه دخترش بود. او به خاطر نظری که کرده بود لباس خود رو پاره میکنه. فکر میکنم این تصویری از کاریه که گاهی شریر در دنیا با ما میکنه که ما چیزهایی رو به خدا و به نام خدا میگیم که خدا هیچ مسئولیتی در اونها نداره خدا از ما نخواسته که چیزی براش نظر کنیم. در جنگ خانگی یفتاه افرایمی ها رو شکست میده بعضی از اونها فرار میکنن و از رود و اردن عبور میکنن یفته اونها رو دستگیر میکنه. یفته نمیتونونه تشخیص بده که کدوم یک دوست و کدوم یک دشمن هستند. چونکه همه یهودی هستند، پس به اونها میگه بگو شبولت افرایمی میها نمیتونستن شین رو تلفظ کنن پس به جای شبولت میگفتن سبولت و یفتا دو هزار نفر از اونها رو گردن میزنه چون که نتونستن بگن شبولت مردم میگن به طور کاربردی این کاریه که ما به صورت الهیاتی انجام میدیم ما به مردم میگیم بگو شبولت و اگه اونها نتونن مثل ما بگن ما اونها رو بی آبرو می کنیم ما این دستور و مخفی الهیاتی رو داریم مردم حتی از وجود این دستور العمل ما فقط به خاطر اینکه اونها نمیتونن مثل ما شبولت بگن دکمه حذف رو فشار میدیم من فکر می کنم کتاب مقدس اصرار داره که ما بدونیم به کی ایمان داریم نه اینکه به چی ایمان داریم ما گاهی اوقات مفاهیم غلطی رو مورد تاکید قرار میدیم من میدونم به چی ایمان دارم پولوس رسول گفته من میدونم به کی ایمان دارم و اعتقاد دارم که او قادره که تعیین کنه من به چی متعهد باشم کتاب داوران رو مرور کنید و برای خودتون کاربوردهایی پیدا کنید. کاربوردهایی برای کشور خودتون وقتی که با خودتون از طریق این شخصیت‌های زیبای کتاب و مقدس مواجه میشید برای خودتون کاربوردهایی پیدا کنید و از خداوند بخواهید که ایمان شما رو تقویت کنه و خودتون رو در دسترس او قرار بدید تا شما را به کار بگیره چون که او میخواد منو شما را به کار بگیره آمین عزیزان برای ما مایه خوشوقتیه که زمانی رو با شما برای مطالعه کلام خود سپری میکنیم امیدواریم که این درس ها ایمان شما رو تقویت کنه کتاب داوران اگرچه دوره تاریکی از تاریخ قوم یهود رو دربر میگیره با این حال امروز مطالب زیادی برای گفتن به ما داره. دعا می که این بررسی شما رو تشویق کنه که کلام خدا رو مطالعه کنین. ترتیبی بدین که در جلسی آینده که کتاب رود رو بررسی خواهیم کرد با ما همراه باشین. تو اون موقع خداوند به شما جسارت و قوت بده تا هر کاری رو که از شما میخواد انجام بدین.